ایران ویژ بازنگری در تاریخ قلم رو میانی اصلا نهاندر تالا هم که از آفریقا اومدن بیرون اول اومدن غربی من میدونم که 19 هزار سال پیش از آسیه میانه جنوبتر بودن و چی شد که از آگروس رفتن به آسیه میانه و بعد از آسیا میانه پخش شدن رو؟ تا امروز هیچ کس نتونسته سر توضیح بده. انسان های خیلی صدهترری بودم از انسان عصر آ که بخوان اص خیلی پیچیده بزارن صاب مثلا جوری پیچیده تر میشه در یک ماجرش که دو خود فروتین شت هست. اینو فاصیل انسانه در یک ماجهه که سنده متاخردتر اسلامی به ویژه گفتن اینو خسین پاچه است. ما رد پای مشخص رو از حدود چهل هزار سال پیش پشت کوهپایه‌های های غربی زاگروس رد پای انسان رو انسان نووین رو مشاهده میکنیم تکلیف مشخص نیسته مید هر کسی یک نظر نیسته سلام آدم احترام و ترین خدمت هممیهران گرامی شنوندگان صدای امید ما در قسمت 33 و سوم و چهارم تقریبا تونستیم وصل بکنیم مباحث بااحث قسمت های یک تا 32 و دو و قسمت هایی که ازظیم بعد قرار دربارش بحث بکنیم. دو پژوهشگر برنامه که در خدمتشون هستیم جناب آقای ایران مهر و جناب آقای فیروزی همچنان بر فرضیه هایی که قبلا مطرح کردن مصر هستند و ما بدون اینکه اصرار داشته باشیم سلی یک مسئله‌ای به توافق اجباری برسیم هر کدوم از دوستان پژوهش‌های خودشون رو بر اساس منابعی که مطالعه کردند به شنوندگان عزیز ارائه‌میفرمایند ما توی قسمت خب از تو قسمت گذشته از آقای ایران ما یک سوالی پرسیدین و ایشون قول دادن در این قسمت پاسخ بدن تو قسمت گذشته در مباحثه مباحث 32 قسمت گذشته برنامه ایران ویج و همچنین 35 قسمت برنامه برابری رسیدن به 40 هزار سال پیش و انسان‌های اولیه‌ای که در قارهای زاگروس الان در حال حاضر ما شواهدی از اونها داریم و قرار شد ربط این مسائل رو به دوران کیومرس سالای کیومرس شخص بوده یک دوران بوده یک نماد بوده از ایشون تقاضا می که دقیقا و به طور شفاف و روشن به اون چیزی که بر اساس مطالعات خود بر اساس اسنادی که دیدن و مطالعه کردن رسیدند خدمت شنوندگان گرامی و پژوهندگان تاریخ قلم روی میانی و تاریخ ایران زمین ارائه بدن جناب آقای ایران مهر اول سلام علیکم به شنوندگان بفرمایید بعد بحث رو شروع کنید خواهش میکنم درود بر شما و شنوندگان گرامی که برنامه رو دنبال می‌کنن خدمتتون بگم بله رسیدیم به ما به پشت دروازه های ما چون تو برنامه برابری خدمت شما بودیم و اینا رو به تفصیل گفته بودیم من نشست پیش خیلی جست و گریخته این نشانه هایی که از حضور انسان در زاگرس هست و از چه زمانی هست و گفتم حالا شاید برای 90ای گنگ باشه چیز نیست چیز عجیبی نیست نام چند تا قار رو گفتیم و دورهاش رو بله اینها بندم دینشناس نیستم انسان شناس نیستم اینا پجروشایی که شده و ها منتشر شده و میتونن خود دوستان مراجعه کنه اینا رو ببینن من فقط چند تا واژه که گفتم عجیب نباشه براشون مثلا ما به فرض کنین پالئولیتیک و اینا اشاره کردیم اینا چیزای عجیبی نیست ببینید این دستبندی که شده الان تو دانشگاه هست ما بعدن تقسیم بندی ایرانی خودمون رو اون چیزی که الان هست اینه پیش از یخبندان دوران سنگی. حالا از زمانی که عصر سنگ آغاز میشه ابزار سنگی تا یخبندان زمین این پارین سنگیه که بهش میگن پالولیت از یخبندان کوچک یعنی از هزار سال پیش تا آغاز اصل فلزی که اونا بهش میگن میشه نو سنگی یا نولید میان اون دوتا میشه میان سنگی. پس این تقسیم بندی. منطقا بحث اینه که اصل فلز کی نو سنگی کی پایان میپذیره و اصل فلز کی آغاز میشه؟ چیزی که تو کتابا میگه خب همون برنز و مس اینا حدود 5000 سال پیش. منطقا چیزی که ما اسناد ملی ما میگن اصل فلز از zaman کیومرث آغاز میشه. و کیومرث دستکم میدونیم که 5000 سال پیش نبوده. خیلی قبلتره مثلا ما معدن مس 24000 سال تو ارومیه داریم. معدن مس 24000 سال در ارومیه ده جاهای دیگه هم هست بنابراین این تخصیم بندی های غربی رو همینطور که اونا رو قبول نداریم اینا فعلا همینقدر میگیم که بدونیم داریم چی میگیم و کیو میگیم پس بنابراین ما گفتیم انسان ها در دوره پارین سنگی رسیدن پشت زاگروز چهل هزار سال پیش حالا ما میخوایم ببینیم که اسنادمون چی میگن اسناد با یه سند که البته نمیشه رفت جلو من همین امروز به صفحه‌ای که شما داریم تو صفحه‌ی مجازی دیدم آقای توبا طبع توبای سخنرانی می‌کردن گفتن که اصلا ما خیلی به ادبات تکه کردیم در ایران اون خوبه اما ما باید گسترشش بدیم دانش‌های های دیگران به کار طنا از زبان عدیبان شاهنامه رو نخونیم یه انسان‌شناس هم باید بیاد درباره‌ی شاهنامه نظر بده حالا یه سنت شاهنامه است خب ما تو اوستا داریم مثلا توی اوستا جمش نخوستین انسانه به وضوح نخوستین انسانه تمام شاهنامه اینجا از شاه هم نام برده یعنی تخت و کلاه بهش نسبت داده منطقه چون شاهنامه رو شاهنامه ابو منصوری و اون معمری و اینا زحمت کشه اینا رو گردابلی کردن از رو تاریخ های کوهنی که مونده بوده اینا هم هایی که باز من عرض میکنم معنا داره یه مثال میزنم این عدد سی زمانی که سی سال گفته میشه در تاریخ ما در استوره ما این یک رمزه یه یک شناسه هست یک اسم شبه. مثلا میگن کیومرث سی سال شاه بود خیلی خوب اخر هم سی سال نیایش میکنه که صاحب فرزند ذکور بشه از این سی ها ببین هم سی سالگی میگن رسیده به دین رو آورده. این سی خیلی تو فرهنگ ما حالا نمیدونم روش کار کرد یا نکرده اما تمام این نخستین ها سی بهشون چسبیده بنابراین این سی که کیومرث سی سال پس بگیم حالا شاه بود این یکم من میگم بیشتر بود حالا من امروز تو این برنامه به شاهنامه میپردازم بعدن باز اوستا و نوشته های پهلوی و اینا رو هم میاریم بندهش رو مخصوصا میاریم خیلی مهمه الان رسیدن پشت زاگرس ما میخوایم ببینیم داره به یا ایکیو مرس ما یا نه دیگه خیلی من هم اینا پشت سر هم نمیخونم یک اون بخشی که شاهنما آغاز میشه از آفرینش و خرد و اینا میگه بعد میاد سوراخ کیو مرس من امجج تیک تیک یک بیتایشو میخونم میگه سخنگوی دهقان چهگوید نخست خودش میگه که نام بزرگی به گیتی که به گیتی که جهان دار از انسان ها حرف میزنه صحبت ایران نیست تو اوستان اینجا صحبت ایران نیست چه بود آن که دهیم بر سرنهاد خیلی میگن تو ساسانیان دهیم بخشی و دهیم گیری و اینا داریم دهیم همون دهیم و پس اینم شاه بوده مثلا شاپور پس کیومرث هم که دهیم دهیم داشته شاه بوده دیگه یعنی اینطوری قیاس میکنن حالا دنبالش ببینید فردوسی چی میگه میگه ندارد کسان روزگاران بیاد چه بود آنکه دهیم بر سر نهاد؟ ندارد کسان روزگاران بیاد میگه هیچکی نمیدونه کی بوده ما هی... یعنی اونقدر دور این این... دوره که دور که نمی دونستن که ببینید ما هی اشاره میکنیم که این خیلی دوره و اینا چطوری به دستشون رسیده رسید و اینا ببینید یه جای دیگه هم به یه جایی به نام پوش اشاره میشه مثلا از روی همین کتاب های جوندی اگه بزیدیم میخونم چون این خیلی مهمه یه جای دیگه هم درباره سرزمین باستانی کوش که بعد من میگم این کوش همون بهشت عدنه میگه که کجا کس جهان کوش خانی همین میگه اون کوس که میگن کجای جهان قرار گرفته بعد دوباره خودش میگه میگه جزی نیز نامش ندانیه میگه فقط نامش رو نامش یعنی نه زمانش رو میگه نه مکانش میگه من فقط میدونم یه کوسی بوده تو اسناد که از جهان کوسخانی همین نیز نامش ندانیه ببینید دائم اشاره میکنن که اینا چیزایی که ما خودشون میگن اعتراف میکنن سندای کهن که ما نمیدونیم چه بود اون که دهیم بر نهاد ندارد که سان روزگارام یاد خب اگه یادشون بود تختی، تاجی، خب میگفتن دیگه درباره گشتاس میگه که گذشته برون سالیان شش هزار خیلی محکم سالش هم میگه گشتاس رو یعنی میدونسته شنا... می میگه می من میدونم گشتاس که شش هزار سال پیش از یه اسناده اینه حدودی هم با پجوش الان درست در میاد اما ببینید درباره باره چی میگه میگه ندارد کسان روزگاران بیاد شاهنامه سند ماست چون این گفت کاین تخت و کلاه کیومرس آورد و او بود شاه ها. این چیزیه که همه بهش استناد میکنن که آب بفرمان بعد جالبه پشت سر این به برج حمل همون برای یا ورگ پهلوی اشاره میکنه میگه که این در اینجا آغاز کرد کارشو میشه تمثیلی کرد که چون بهاره دیگه برج برای بهاره میشه اینطوری برداشت کرد دستکم کم تو نظریه که بنده دارم روش کار میکنم داره به آب و هوای مناسب اشاره میکنه کیرز توی یک آب و هوای مناسب برای رشد جوامه انسانی داره اون دوران طی میشه حالا می دوباره باز اشاره میکنه کیورس شد بر جهان کت خدای صحبت ایران نیست حالا دنبالش کنید نخستین به کوه اندرون ساخت جای کجا کوهن باز با اون نظر انسان سانشانیست که ما گفتیم میبینیم که تا اینجا که تناغذی نداشته سر و سر بخت و تختش برآمد به کوه تو کوه قار هست کاخ که نیست که دنباله رو گوش کنین پلنگینه پوشید خود با گروه پوست جانوران تنشون میکردن اگر کیومرس بخواد 9000 سال پیش باشه یعنی تو دوران نوسنگیه یعنی بعد از گوبگلی تپه آدمای بعد از گوبگلی تپه با اون فناوری پوست جانور میتونن تنشون کنن از او اندر آمد همین پرورش یعنی حالا یه چیزایی رو اینا پروریدن و به دست آوردن که پوشیدنی نو بود و نو خورش حتی همین پوستم هم تازگیا بیشتر اشوفه که میتونن دورشون بپیچن بوده. و نو خورش یعنی تازه این گوشت و تشکیلاتو یاد گرفته بودن بپزند خورش توی فرنگ ایرانی یعنی خوراک خوراک پختنی همین پوست هم اوایلش بوده که اینا یاد گرفته بودن شما به من میگین چه زمانی. حتی پخت غذا هم باز تازگی ها بهش دست پیدا کرده حالا نگاه کنین به گیتی درون سال سی شاه بود میگه تو باز گیتی باز صحبت ایران نیست اون سیه حالا آمد سال سی شاه بود نگاه کنیم بین خسرو پرویز و یزدگرد همه فکر میکنند مثلا 200 سال فاصله بوده بین خسرو و یزدگرد ساله کلا 4 ساله 10 تا پادشاه میاد خب مال همین 1400 سال پیشه شما ببین اسناد رو نگاه کنید درباره هر کدومشون هر کدوم از تاریخ نگارها یه چیز گفتن یکی گفته آذر ما که گفته نه 9 ما بود یکی گفته نه یک سال بود بعد چطوری مال 10000 سال پیش دقیق میگن کیومر 30 سال، او یکی مثلا 40 سال، او یکی 22 سال، او یکی 8 سال؟ یعنی میشه مال 1400 سال پیشو 10 تا مورخ نوشتن بلعمی کی کی کی کی, کی تا اون من سبئوس ارمنی اینا هر کدوم یه چیز نوشتن. بالا جدا بود. پس میفرمایید راز این عدد 30 چی بوده؟ ببینید من تا جایی که دیدم این سی زیاده. حتی عرض میکنم زوروان که دیگه آدم نبوده که. زروان 30 سال در فرهنگ ما نیایش میکنه تا صاحب فرزند ذکور بشه. ببینین حالا من الان یه تیکه فقط آخر وقت تنش شد بگید من این از دستم نرسید من فقط این, این عدد سی رو تکلیفیش رو الان اینجا می من از روی پنجشای استاد جنیدی اون رو بگیتی در اون سال سی شاه بود به خوبی چو خورشید برگاه بود حالا ببینیم باز یک نشانهایی دیگه داره میده دد و دام و هر جانور کش بدید زگیتی به نزدیک او آرمیت تازه یک جانورای گرد انسان دارن اهلی میشن شما به من بگید چه زمانی دو تا میشدندی بر تخت او از آن بر شده فر و بخته او این دو تا میشدندی مثل اونجوی تهمورزیه که میگه دو بهره از دیوان رو ببست دو بهره این یعنی دو سوم اینو تو ما تو اوستا و اینا هم داریم بعد داستان سیامک رو میگه بعد دنبالش میگه که حالا میگه که اینا اینجوری بودن به گیتی نبودش کسی دشمنا مگر بد کنش ریمن احریمن ها اهریمن در فرنگ ما همه هم میدونن که سرماست جایگاهش هم آپاختره از شمال میاد فقط سرما اینا رو آزار میداده آقا کیومرث و سیامک دشمنی نداشتن و این سرما هستش. تو اون سرزمین شمالی یه چیز دیگه هم بوده. اگه اجازه بدین مقاله اول من داره توی سیدنی چاپ میشه. دومیش که چاپ شد یک ماه آینده، ماه میلادی من اینجا دیگه اونجا میگم که این دشمنه دیگه هم کی بودن. کیومرث زین خود که آگاه بود که تخت مهیر رو جزو شاه بود. میگه فکر می‌کردن فقط خودشونن اما یک کسی دشمنه دیگه هم اونجا بودن. یکاییک یک بیامد خوجست سروش به سان پری پلنگین پوش حالا سیامک داره میره جنگ بپوشید تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود و نه آین جنگ هنوز هنوز بات اصلا کاملا این شری به اون شکلی نبود اون سیرم که گفتیم من فقط در یک دقیقه از سیسانیه. بگم که اسد جنیدی اینجا میگن که اینا دوران بعد اشاره اشاره‌ای می میکنن میگن مقصود از یک سال پناهندگی و سی سال سلطنت کیومرث و 40 سال سلطنت اوشنگ و 700 سال سلطنت جمشید که اشاره به دوران های مختلف زندگی است اشاره است nomads و نه دقیق بدین معنا که تقریبا زمانی که جانداران از سرما به کوه پناه برده بودند نسبت به زمانی که قبل از آن با آسایش زندگی میکردند کمتر بوده البته هر چیز در زمان زمان به پیش می رویم. گرچه به مقدار سالها افزوده می شود اما از مقدار واقعیش کم می شود میگه گه کیومرس گنده تر از هفت ساده با چه منطقی با چه می من یادتونه گفت بهتون گفتم هرچی تو زمان عقبتر میریم این دورها کشدار تر و بزرگترن؟ این یعنی فاصله میون مثلا از کیومرس تا تحمورس خیلی بزرگتره تا مثلا کیکاوستا بله ببینید همون استاد جانید دارم میگن. میگه هرچی ما، البته هرچی در زمان به پیش میرویم گرچه به مقدار سالها افسوده می‌شود، اما مقدار واقعیش کم می‌شود. مثلا هزار سال سلطنت زهاک بسیار کمتر از چل سال دوره حوشنگست. بله. ایشون هم تو پژرشاشون اینو ارهاب بله مشاهده کنم. اینم این دیدم بله ولی خب ام... تا کنون پجوهش گستردهی که واقعا نشون بده و رمز زدایی بکنه نه کسی قبول نداره کسی قبول نداره بره روی اینا کار این کنه بود پیدا کنه اینها پیدا نش... ما نا خیلی متشکریم مسئله کیومرث رو فقط از اسناد خود شاهنامه گفت و از اسناد ما فقط می‌خواستیم ببینیم رسیدن به زاگروس کوه سرما اینا قار تا اینجا می‌بینیم که شاهنامه تقریباً با این تناقضی نداشت. خواهش می‌کنم فیروزی خیلی خوشحالیم که باز در خدمت شما هستیم و مجدداً واقف هستیم که به اون فضیه خود تو که بر اساس اسنادی که عمدتاً از اسناد دوره اسلامی با استفاده از اسناد ایران کهن فرمودید که اینها خود کیومرس در یک منطقه‌ای بوده که پادشاه میشه و به صورت هم در واقع انتخاب میشه اون مسئله ای که شما توی قسمت‌های گفتمان 26م مطرح کردید ولی خب به صورت خیلی گذرا ازش رد شدید تو قسمت گذشته هم یک مقدماتی از این مسئله رو فرمودید خیلی شادمان میشویم که حدود و سغور و اون قسمتی که خود کیومرث میاد حکومت تشکیل میده و زمانی که داریم و دلایلی که برای این مسئله داریم رو خدمت شنوندگان بفرمید باشه می من فقط بهش باز باز یه مسائلی رو تکرار کنم بله حالا این هفته آقای خالقه مطلق صحبتی کردن که به عنوان یک کسی که مدرس ادبیات و زبان فارسی این صحبت و هستن ایشون ما در جایگاه یک تاریخ تاریخ‌پژوه قرار رو داد خودشو. بله ای باستانشناس و تعیین تکلیف واقعیاتی که برای دو شخصیت مختلف که مثلا کیخسرو پورس بزرگ است یا همین حرکتی ما در دانشگاه قاهره نمیبینیم که یک به قاهره از قاهره به راجب فراعنه مصر گم شده و نشده تعیین تکلیف کنه و ایشون این کارو کرد و از اون بعدتر تک سنت حرف این حرفو زد یعنی یک شاهنامه فاجعه است این وضعیت برای ایران از اون طرف من یک ادیبی رو می‌شناسم مثل آقای بختیاری دکتر علی قلی محمودیه بختیاری که برعکس این حرفو زد ایشون در سطح آقای خالقی مطلق و ایشون اعتقاد دارن که پیشدادیان کیونا ما با هخامنشیان، هخامنشیان پیدا کردن آفین دستشون درد نکنه ولی فراموش کردن تاریخ قدیم چرا تبی داره ببینید این حاق مطع آدم بزرگن یعنی اما نباید تو این زمینه این اظهار نظرقیقا و به درستشون بالا ببینید ما اگر یک مقدار از این شاهنامه گرایی بکنیم خودمون واقعا قرار داریم میشیم دوش و غیر از اینکه به اسناد دیگر خودمون چه اسلامی چه پیش از اسلامی نگاه کنیم و در کنار این بشیم یه مققا این تاریخ این چین بیچاره رو بخونیم که خیلی تاریخ خشکیه هزار بار هم تکرارم گفتم یا بقیه رو یعنی بینونهرن می‌بینه که با این قصه های عبد و آفرینش و پیدایش فرهنگ همه جا همین شکلیه یعنی یک سری متون طول و طویل داستان های عجیب و غریب دارن از خدایان شروع میشه که در ایرانی خدایان رو پاک کردن فقط تمونش تو گشت مونده از خدایان شروع میشن تا این پادشاهان اولیاشون و این اتفاقات اولیه‌ی فرهنگ رو با اینو توضیح میدادن یک پادشاهی لباس لباس فراهم کرده یک پادشاهی نمیدونم خ... خوراک فراهم کرده خونه فراهم کرده اینا همه داشتن اون کاری که دیگران اومدن انجام دادن اومدن تمایز قائل شدن بین اون پادشاهی با اسم ایکس که این کارا رو کرده و همین آدم ایکس که در تاریخ وجود داشته بله امورا این حرکت رو کرده اگر کیومرس در شاهنامه ای و نمادین هست یک کیومرسی که در مطم موازه این شاهنامه وجود داره یا قبل از این بوده و ما نمی‌شناسیم؟ به همین صورت باشه من تو اوستا هست بله در فروردین یش من خودم اینو اطلاع دارم کیو مرث نخستین انسانی است که به حال ستایش میشه با گاوی که همراهش شد. در متون اسلامی ما میبینیم که یه فرقهی بوده که کیو مرسیه که اینا کیو مرث نفر اول اینو مثلا مطلعیشون مورخ اسلامی داره میندازه میگن در ردیف این مسلمان‌ها و این عدیان ابراهیمی دارن برای خودشون همون که حرکات رو تعریف میکنن که نق انسان داریم و بله و هم... وان ولی... حتی غزالی هم اون اسقای توضیح یه جایی هم میگه میگه که اولین انسان حضرت آدم بود که دو تا فرزند داشت یکی شیست یکی هم کیومرد یا کیومرث که شیث بعد از فوت حضرت آدم شیث میشه مسئول در واقع مذهب انسان ها در واقع پیامبر میشه بعد از حضرت آدم کیومرث هم میشه پادشاهه تا یعنی همچین بله مسئله اص... بوده تاریخ اسلام که متصلک میندازه میگه که اینا فکر میکنن انسان میخوسی انسان دسته کیمس فرزند چندو مثلا میخوسی انسان یعنی قشنگ داره به این اشاره میکنه که این چیزها ریشه ایرانی نداره اگرم شما در فرودین یغش میبینید ببین یکی یش از یشتای کهنه یکی از یشتای کهن هست ولی در همین یشت کوهن نام بودا رو دارید خب این چیزی توجیح میشه این تأثیر روزگار متاخرش. تأثیر روزگار و عدیان این تا در رامش تأثیر میانرودا نیست بر متون ابست نسخه به روز شده دیگه رامیش قدیمی نیست سرزمین قدیمی نیست سرزمین جهدید اومره به روز وارد آبانیش شده عین هم همین در فردیاش رخ دادهره. فقیقه کیومرسیه رخ داده ما نمیدونیم فقیقه ای که ما متخصشون مییم کیومرسی و قائلا به انسانان خستیم به نام Qمر تحت تاثیر ادیان ابراهیمی یا ادیان ابراهیمی تحت تاثیر نه ما اینا نمیدونیم ولی اینو میتونیم درک کنیم که این قضیه از یک نقطه ایجاد شده و مواوازش که تو اسناد اسلامی میبینیم که این اسناد اسلامی که به حال فعل بدای نمیشنن که کیومس نخصین پاج میتونن بیان بنویسن که چیز یک چون یک سند اسلامی پیدا نمیکنه که از کیومس شروع نکنه اگر بخواد از پیشدادیان صحبت کنه از ابن ابریو من دارم که از هخامنشیان میخواد شروع کنه از پیشدادیان کیش... کیانیا نمیشناسه ولی اسناد اسلامی از کیومس شروع میکنن می... می نویسن که بخی اونو نقص انسان میدونن که غلط است بگوون روسی پادشاه میگن بعد داستان های افسانه ای درباره این آدم شروع میشه که الان در کوه بود بهش گلشاه میگفتن یا گرشاه میگفتن یا جلو توی خود قزای تاریخی تر میشه مردمی داره پادشاهی داره در همین شاهنامه با ارزور و سیاپوست درگیر میشه یعنی مثلا بعد اینا دراویدین هایی باشن که هنوز سو سیستان بلوچستان هستن تو پاکستان هستن تا این دوستان قبلا بالاتر بودن این مورخ های دور اسلامی طبیعیه که نپذیرن کیو متن خاص انسانه. بذری می کشتنشون شما دوره رو نگاه کنین تو دوره‌ای که بگی قرآن گفته آدم از اولیه تو بگی نکش عمر اولیه می کشتنتون دوره خیلی, خیلی از این قضیه اینا میان مواظه میان فرقه کیو ای این فرقه کیو مرزیه که شروع می‌کنن به صحبت کردن این قضیه رو به من خیلی باز می‌کنه ببینی خوره کریستین سنم گفته اینا حداقل 4 تا انسان اولیه میشناختن این اقوام هندورویی شرقی حتی به جمشید هم لقبو دادن به فريدون هم این لقبو دادن یعنی قضیه شوخی نیست ایناشون فرق مختلف بوده که عین شینی ها هر پادشاه و نماد ازی کی اوستا رو ننوشتن که ما, ما نمیدونیم کی نمسیه بعد از اسلام اول اوستا نیست فروردین یشته یک بخش از اوستا است اوستا از نقطه اول تا آخر اینا همین شینیه ما برای شنوندا ها میگیم شنوندا ها که اینقدر تخصصی نمیدونن که من شما میگین نه طرز تاثیر کیو مرسیه است من میگم ده زبان اوستا کیو مرسیه کجاست ما نمیدونیم ما نمیدونیم ما میدونیم. ما میدونیم فرقه کیو مرسیه این اعتقاد داشته نیاکان کیو هم با این اعتقاد داشته اینا دنباله هم از کجا معلوم که این بعدا متخل به وجود نیمده باشه به حال ردشو من در فرونیش پیدا میکنم همین آدم های دوره میکن. اسلامی به این میگن گلشاه یعنی آدم توی کوه بدونی که بدونن یعنی چی دقیقا فقط اشاره میکنم چون یه گعیری شاه بوده این خب برای تو خوب بوده. این درست. نمی‌دونم اصلا معنیش چیه. حمید اتفاقه این دا... این داستان‌ها میگم یه خودگی ما متون بین النهرینی یا چینی رو چیز چیزا برام قابل حل هست. انسان مورخ کلاسیک چه ایرانی چه یونانی چه هر جای دیگه اینکه انسان شناس نبوده که کلنگ بزنه بخواد انسان شناسی کنه ریشه های پیدایش فرهنگو در بیاره که اونور می گفتن ماهی مرد از آب اومده بیرون به این پادشهان یاد داده و شروع کردن به چیز همون ها الان موجود تاریخی دارن ولی با ماهی مردی خب از دریا او بیرون نشده او او تاریخ قانون فراگیر همپل یکی از قوانین رد شده است نمیشه بگیم چون مصر این کار کردن میان رو کار کردن پس ما همه منطقه هم. کاملا یک نواخت اصلا شکی نیست اما اگه gibi ببینون اول اومدن دودمان پیدا کردن ما هم با دودمان پیدا کنین این تافیج ببینین این در شرق فلات و قرب غرب انجام شده این علمه این واقعیت همین ارمه نمی‌شه وسط... تعمیم داد ببینین ما این فل... تاریخ تلاش می‌کنن علمو تعمیم بدن مورخین مقاومت می‌کنن میگن آقا نمیشه تاریخ یک امر تکرار نپذیره سلام تاریخ امرتون تکرارپذیره این موارژ همشه ذکر تاریخ و خب بزرگم, بزرگم. اینو گفتم الان میدید سه دقیقه فرصت بیشتر نمونده و شما اون حدود و رو این باید, باید بره جلسات بعد بعد بره جلسات بعد ببینیم مثلا بها آب و هوای فلات ایرانو ما میشناسیم همین که انسانی پشت سارگرسو میگن هزار سال پیشینفا ببین نوسنگی ایران خیلی نوسنگی جدیدیه نسبت به فلسطین و سوریه خیلی جدیده یعنی اصلا ما ف... میگن شما مطالعه نمی کنید اطراف حوضه ایرانو ما فکر می کنیم اینجا چیز عجیب و تافته جدا بافته وجود داره تو متونمون تو باستان شناسی اون در که اصلا این قضیه نیست این منظورتون هستا 40000 سال پیش اقلیمی این منطقه ساکن ایسا... داشتیم که خیلی از انسان نئاندرتال نشسته توش نه اجداد ما پسالاموهای هوموساپینس این تو هستن که بعدشون پیدا شدن من پس ایده به مزار نیچر رو 2014 رو میارم نشسته دیگه خیلی خوبه آه. ما خ... خیلی از این غارها ما خودمون میبینیم که رو ما بوده ولی قضیه این است که فلات ایران از نظر قنای پیش از نوسنگی که پایین سنگین هستند و نوسنگی خیلی عقب‌تر از از جاهایی مثل کنان و سوریه که ما فکر کنیم که مثلا ما خیلی شیز، سرزمین سرزمینی شاهکاری داریم و این متون از هزار سال پیش دارن صحبت میکنن این قصه ها نیست. این قصه ها در چین و مصر و اینا هست. اینا حل شده و ما روی یک سند 1000 ساله, ساله بوده و ما بوده ما از یک شاهنامه 1000 ای که خودش وارث حالا چندین سند هست و غلط‌های علمی بالایی هم داره. و دروسی تاریخی خیلی بالایی هم داره نمیتون هوکترین کنی واسه انسان شناسی این کارا مال این روحانیونه مسیحی بوده که میخواستن رو تورال مثلا عمر کره زمین رو حساب کنن سنجروم و این داستان‌ها کرونولوژی می‌ساختن از کره زمین حضرت شما معتقد هست. هستید که اجداد ما اجداد ما ایرانیان و ها چهل هزار سال پیش نمیتونستن توی زاگرس kommen میتونن باشن ولی اینکه ما بیا از شاهنامه بخوایم داستانا رو بگشیم نه اشکال فقط شاهنامه است من من هفته پیش داستان انسان شناسی خوندم خب هزن... این هفته اومدم خوندم از شاهنامه هم خوندم دیدی تناقضی بین اینا کاملا اینا مثلا این لباس میگم عرض کنم افواد این افواد مذهبی است که وقتی می سن چیزی پیدا بشه بعد بعد تو متونشون پیدا کنه ببینید باز حتین ما هم سندای باز اشکالی نیست اصلا نورا نیست اصلا این حرکت اشتباه فلسفش که شما بیاد تو شاهنامه واسه 40 هزار سال پیش چنین تکلیفی می کنه که ببین فقط شاهنامه یک یه نشونادم گفتن سنده دیگه گفتم این, این حرکت باطله گفتم تو قاره کومجی هوموساپین زندگی کرده اینم اسنادش این دوران موسترین و اینا این که از اینی که نمیتونی رد کنی بله این فرهنگ موسترین اینم داره میگه اینا پلنگینه پوش بودن تو کوه بودن حالا شما بگو شاهنامه آلکیه اشکال نداره این داستان ها میگم در متن چینی اینا هستن ولی اینطور تفسیر نمیکنه آخه چینی ها هزار سال پیش چی اصلا این دیداستان نه خیلی ساده اینا حل شدن اینا یک قرن حل شدن باستان شناسی انسان شناسی بازم این بحث رو ادامه بدیم حل این رو بله قسمت آینده این قسمت یعنی من این قسمت از این شاهنامه شاهنامه گرایی مطلق خیلی واهمه دارم بله نب... اولش عرض کردم تا ها سند رو بعد بخونیم یکی من من رو تو این بره. ده دقیقه وقت میکنم بخونم نشست های آینده ده ها اصلا بندهش رو میاریم بخونیم بله مشکلی نداره اصلا فقط... رو میاریم میخونیم اینا بعدش یه خوانامه جداست حالا صحبت می کنیم چون من قرر روی رو کرد من مقایسه میانه این چیزی که آخه ببینید یه جوری میگن شاهنامه که شاهنامه رو فردوسی تو جیب داییش درآورده ما که دیگه پیشینه می رو می‌بینیم ابو مسعود چطوری اینو جمع کرده اون موبدا کی بودن مثلا اون اسناد همین بوده حتی بن شاهنامه سالوی و شاهنامه همین شاهنامه فرضیه جناب که میگین گشتاس 8000 سال پیش بوده همه بهتون می‌خندن و مثل روز داره میگه من تایید می‌کنه مورد صحبت می‌کنه دقیقاً داره تایید می‌کنه ولی نه صحبت مثلا قضیه اوستاد ما میگیم در اوستا اومده در شاهنامه یه سنادی که داره حرف شما رو تایید می‌کنه همین شاهنامه دقیقاً ریز بریم همه بهتون می‌خندن به جو سایه کی می‌خندن وقت... ببین اجازه بدید حالا وقت تموم بشه یا نه ببین تعمیم دادن این قضیه برای اثبات حرف خودشون کار حرکت خیلی زیاده دقیقاً همین رو میگم مسل مثلا به ایران بخوای هی بگید چون لا شاپ فرون پیدا کنیم ما این شاپ پیدا کنیم میام تعمیم دیگه ولی اینم تعمی تعمیم علمی توی دانشگاه این کارو کردن نه نمیشه نمیتونیم بگیم که تعمیم علمی تعمیم فیروزی خودشون یک پژوهش داشتن و پژوهش خودشون یکی از مهمترین از سندش هم شاهنامه بوده و در باینده باز هم در این موارد بحث کنیم و با باشلمانگان عزیز همراه باشیم شما شهروندان را تا آغاز قسمت 36م به خداوند متاله کنیم خدا یار نگهدار